گوشت خرگوش کوهی حلال است یا مکروه است خرگوش کوهی باشه یا خونگی باشه خرگوش در نزد اهل سنت والجماعت حلال است در نزد برادران تشیع مکروه است و حلال یعنی اسلام از علماء مجمع است خرگوش شکار کردم و برای نبی کلیم ها فرستادم حدیثی حد حضرت انس می‌فرمایند که حضرت ابو تلها خرگوش شکار کرد فبعث به ها الی نبی صلی الله علیه وسلم پاهاشو بر نبی کریم فرستاد نبی کریم هم قبول کردند اما یک روایت می آید که نبی اکرم اسلام نخوردن اما بعض میگه و سه خوردن سخوردن هم ثابت